اسنبیه مانویه مولوی برنامه 108م حکایت آن زن پلیدکار که شوهر را گفت که آن خیالات از سر امرود بن می‌نماید تو را که چون اینها نماید چشم آدمی را سر امرود بون از سر امرودبن بون فرود آی تا آن خیال ها برود آن زن می خواست تا با مول خود برزند در پیش شوی گول خود پس به شوهر گفت زن که نیک بخت من برایم می و چیدن بر درخت چون برآمد بر درخت آن زن گریست چون زبالا سوی شوهر بنگریست گفت شوهر را که ای معبون رد کیست آن لوتی که بر تو میفتد تو بزیر او چو زن بغنوده ای فلان تو خود مخنس بوده ای؟ گفت شوهر نه سرت گویی بگشت ورنه اینجا نیست غیر من بدشت. زن مکرر کرد کان با برتله کیست بر پشتت فروخفته هله؟ گفت ای زن هین فرودا از درخت که سرت گشت و خرف گشتی تو سخت. چون فرود آمد، برآمد شوهرش زن کشید آن مول را اندر برش گفت شوهر کیست آن ای روز پی که به بالای تو آمد چون کپی گفت زن نه نیست اینجا غیر من این سرت برگشته شد هر زحمتا او مکرر کرد بر زن آن سخن گفت زن این هست از امرود بون از سر امرودبن بون من همچنان کج همه دیدم که تو ای قلتبان این فرودا تا ببینی هیچ نیست این همه تخییل از امرو بونیست هزل تعلیم است آن را جد شنو تو مشو بر ظاهر حزلش گرو هر جد حزل است پیش حاذلان ها جد است پیش عاقلان کاهلان امرود بن جویند لیک تا بدان امرود بن راهیست نیک نقل کن زمرد بن ککنون برو گشته تو خیره چشم و خیره رو این منی و هستی اول بود که بر دیده کژ و احوال بود چون فرودایی از این امرود بون کژ نماند فکرت و چشم و سخن یک درخت بخت بینی گشته این شاخ او بر آسمان هفتمین چون فرودایی از او گردی جدا مبدلش گرداند از رحمت خدا زین تواضع که فرودایی خدا راستبینی بخشدان چشم تو را. راستبینی گربودی آسان و زب، مصطفی کهی خواستی آن را سرب؟ گفت بن ما، جزو و جوز از فوق و پست، آنچنان که پیش تو آن جزو هست. بعد از آن، بر رو بر آن امرود بن که مبدل گشت و سبز از امری کن چون درخت موسوی شد این درخت چون سوی موسی کشانیدی تو رخت آتش او را سبز و خرم می کند شاخ او انی عنا الله می زند. زیر زلش جمله حاجاتت روا این چونین باشد الهی کیمیا آن منی و هستیت باشد حلال که درو بینی صفات زلجلال شد درخت کج مقوم حق نما اصلحو ثابت و فرع فی السما باقی قصه موسی علیه السلام پیغام از وحی مهم که کجی بگذار اکنون فستقم این درخت تن عصای موسی است کمرش آمد که بی اندازش زده است تا ببینی خیر او و شر او بعد از آن برگیر او را زمرهو پیش از افگندن نبود او غیر چوب چون به امرش برگرفتی گشت خوب اول او بود برگ افشان برر را گشت معجز آن گروه غره را گشت حاکم بر سر فرانیان آبشان خون کرد و کف بر سرزنان از مزارشان برآمد برآمد قهت و مرگ از ملخهایی که می خوردند برگ تا برآمد به خود از موسا دعا چون نظر افتادشند در منتها که همه ایجاز و کوشیدن چراست چون نخواهند این جماعت گشت راست امر آمد که اتبای نوح کن ترک پایان بینی مشروح کن زان تقافل کن چودائی رهی امر بلغ هست نبود آن تهی. کمترین حکمت که این الهاه تو جلوه گردد آن لجوجو آن اوتو، تا که رهبین مودن و ازلال حق فاش گردد بر همه اهل فرق، چونکه که مقصود از وجود اظهار بود، بایدش از پند و اغوا آزمود. دیو الهاه غوایت می کند، شیخ الهاه هدایت می کند، چون پیاپی گشت آن امر شجون نیل می آمد سراسر جمله خون تا به نفس خیش فرعون آمداش لابه می کردش دوتا گشته قدش کانچه ما کردیم ای سلطان مکن نیست ما را روی ایراد سخن پاره پاره گردمت فرمان پذیر من به عزت خوگرم سختم مگیر هین به جنبان لب به رحمت ای امین تا ببندد این دهانه آتشین گفت یارب می فریبد او مرا می فریبد او فریبیده تو را بشنوم یا هم هم خود اش تا بداند اصل را آن فرعکش کسل هر مکر و حیله پیش ماست هرچه برخاک است اصلش از سماست گفت حق آن سگ نیرزد هم بدان پیش سگ انداز از دور استخوان هین به آن عصی تا خاکها وادهد هرچه ملخ گردش فنا وان ملخ ها در زمان گردد سیاه تا ببیند خلق تبدیل اله که سبب ها نیست حاجت مرمرا آن سبب بهر هجاب است و غطا تا طبیعی خیش بر دارو زند. تا منجم رو به استاره کند تا منافق از هریسی بامداد سوی بازار آید از بیم کساد بندگی ناکرده و ناشسته روی لقمه دوزخ به لقمه جوی آکل و اکول آمد جان عام همچو آن بره چرنده از هتام می چرد آن بره و قصاب شاد کو برای ما چرد برگ مراد کار دوزخ می کنی در خوردنی بحر او خود را تو فربه می کنی کار خود کن روزی حکمت بچر تا شود فر دل با کر و فر خوردن تن مانع این خوردن است جان چو بازرگان و تن چون رهزن است شمع تاجر آنگه هست افروخته که بود رهزن چو سوخته که تو آن هوشی و باقی هوش پوش خیشتن را گم مکن یاوه مکوش. دان که هر شهوت چو خمر است و چو بنگ. پردای هوش است و عاقل زوست دنگ. خمر تنها نیست سرمستی هوش. هر چه شهوانیست بندد چشم و گوش. آن بلیس از خمر خوردن دور بود، مست بود او از تکبر و از جهود، ماست آن باشد که آن بیند که نیست، زر نماید آن چه مث و آهن است، این سخن پایان ندارد موسیا، لب جنبان تا برون روژد گیاه همچنان کرد و همان در دم زمین سبز گشت از سنبل و حب سمین اندر افتادند در لوت آن نفر قه دیده مرده از جول بقر چند روز سیر خوردند از عطا آن دمی و آدمی و چار پا چون شکم گشت و بر نعمت زدند، وان ضرورت رفت، پس تاغی شدند نفس فرعو است. هان سیرش مکن، تا نیارد یاد از آن کفر گهان تف آتش نگردد نفس خوب، تا نشد آهن چو اخگر، هین مکوب بی مجاعت نیست تنجون بشکنن آهن سردست می کوبی بدان گر بگیرید ور بنالد زار زار او نخواهد شد مسلمان حوش دار او چو فرعون است در قهد آنچنان پیش موسا سرنهت لابه کنان چون که مستغنی شد و تاغی شود، خرچوبار انداخت ایسکیزه زند، پس فراموشش شود چون رفت پیش کار او زان آهوزاری های خیش. سالها مرد که در شهر بود، یک زمان که چشم در خواب رود، شهر دیگر بیند و پرنیک و بد، هیچ در یادش نیاید شهر خد که من آنجا بودم این شهر نو نیست آن من در این جایم گرو بلچنان داند که خود پیوسته او هم در این شهرش دست ابداع و خو چه عجب گر روح موتنهای خیش که بودستش مسکن و میلاد پیش می نیارد یاد که این دنیا چو خواب می فرو پوشد چو اختر را صحاب خاصه چندین شهرها را کفته گردها از درک او ناروفته اجتهاد گرم ناکرده که تا دل شود صاف و ببیند ماجرا سربرون برون آرد دلش از بخش راز اول و آخر ببیند چشم باز اتوار و منازل خلقت آدمی از ابتدا آمده اول به اقلیم جماد، و از جمادی در نباتی افتاد. سالها ان در نباتی آمر کرد، و از جمادی یاد ناورد از نبرد. و از نباتی چون به حیوانی فتاد، نامدش حال نباتی هیچ یاد. جز همین میلی که دارد سوی آن، خاصه در وقت، بهار و زیمران همچو میل کودکان با مادران سر میل خود نداند در لبان همچو میل مفرت هر نو مرید سوی آن پیر جوانبخت مجید جزو عقل این از آن عقل کل است جنبش این سایه زانشاخ گل است اش فانی شود آخر درو پس بداند سر میل و جستجو سایه شاخ دگر عینک بخت کی به بد گر نه جنبد این درخت باز از حیوان سوی انسانیش می آن خالقی که دانیش همچنین اقلیم تا اقلیم رفت، تا شد اکنون عاقل و دانا و زفت. عقل های اولینش یاد نیست، هم از این عقلش تحول کردنیست. تا رهد زین اقل عقل پر حرس و طلب صد هزاران عقل بیند بلعجب. گرچو خفته گشت و شد ناسیز پیش، کی گزارندش دران نسیان خیش باز از آن خوابش به بیداری کشند که کند بر حالت خود ریشخند که چه غم بود آنکه که می خوردم به خواب چون فراموشم شد احوال سباب چون ندانستم که آن غم و اعتدال فعل خواب است و فریب است و خیال همچنان دنیا که حلم نایم است خفته پندارد که این خود دایم است تا براید ناگهان صبح عجل، وارهد از ظلمت زن و دغل خنداش گیرد از آن غمهای خیش چون ببیند مستقر و جای خیش هرچه تو در خواب بینی نیک روز محشر یک با یک پیدا شود آنچه کردی اندر این خواب جهان گرددد هنگام بیداری آیان تا نپنداری که این بد است نیست در این خواب و را تعبیر نیست بلکه این خنده بود گریه و زفیر روز تعبیر ایستم گر بر اسیر گریه و درد و غم و زاری خود شادمانی دان با بیداری خود. ای دریده پوستین یوسفان گرگ برخیزی از این خواب گران. گشته گرگان یک با یک خوهای تو می درانند از غضب اعضای تو. خون نخوست پد بعد مرگت در قصاص. تو مگو که مردم و یابم خلاص این قصاص نقد هیلت سازی است پیش زخم آن قصاص این بازی است زین لعب خوانده است دنیا را خدا که این جزا لعب است پیش آن جزا این جزا تسکین جنگ و فتنه است آنچو اخصا است و این چون خط است. بیان آنکه خلق دوزخ گرسنگانند و نالانند به حق که روزی های ما را فربیه کردان و زود زاد ما رسان که ما را صبر نماند این سخن پایان ندارد موسیا، هینده ها کن آن خران را در گیاه. تا همه زان خوشعلف فربه شوند، هین که گرگانند ما را خشممند. ناله گرگان خود را موقن ایم. این خران را تومه ایشان کنیم. این خران را کیمیای خوشدمی از لب تو خواست کردن آدمی. تو بس کردی به دعوت لطف وجود جود آن خران را تالع و روزی نبود. پس فرو پوشان لحاف نعمته تا بردشان زود خواب غفلت تا چو از چونین خواب این رده شام مرده باشد و ساقی شده داشت طغیان ترا را در حیرت پس بنوشند از جزا هم حسرت تا که عدل ما قدم بیرون نهد، در جزا هر زشت را در خورد دهد کانشه که می ندیدندیش فاش، بود با ایشان نهان اندر معاش چون خرد با توست مشرف بر تند، زو قاصر بود این دیدنت نیست قاصر دیدن او ای فلان، از سکون و جن در امتحان، چه عجب گر خالق آن عقل نیز، با تو باشد چون نی تو مستجیز. از خیرت غافل شود، بربد تند، بعد آن عقلش ملامت می کند. تو شدی غافل ز عقلت عقل نی، کس حضور استش ملامت کردنی، گر نبودی حاضر و غافل بودی در ملامت کهی تو را سیلی زدی ور از او غافل نبودی نفس تو کی چنان کردی جنون و تفستو پس تو و عقلت چو استرلاب بود زین بدانی قرب خورشید وجود قرب بیچون است اقلت را به تو نیست چپ و راست و پس یا پیش و رو قربه بیچون چون, چون نباشد شاه را که نیابد بحث عقل آن راه را نیست آن جنبش که در اسبه تو راست پیش اسبه یا پسش یا چپ و راست وقت خواب و مرگ از وی می رود، وقت بیداری قرینش می شود. از چه رحم آید اندر اثبات، که به او ندارد منفعت. نور چشم و مردمک در دیدد، از چه ره آمد بغیر ششجهت. آلم خلق است با سوی و جهاد بی جهت دن آلم امر و صفات بی جهت دن آلم امر ایسنم بی جهد تر باشد آمر لاجرم بی جهت بود اقل و علام و البیان اقل تر از اقل جانتر ز جان بی تعلق نیست مخلوق بدو آن تعلق هست بی چون ای امو زن فصل و وصل نبود در روان غیر فصل و وصل نندیشد گمان غیر فصل و وصل پیبر از دلیل لیک پی بردن به ننشاند غلیل. پی پیا پای میبر ار دو ریز اصل، تا رگ مردیت آرد سوی وصل. این تعلق را خرد چون ره برد، بسته فصل است و وصل است این خرد، زین وسیعت کرد مرا مصطفی بحث کم جوید در ذات خدا. آنکه در ذاتش تفکر کردن است در حقیقت آن نظر در ذات نیست. هست آن پندار او زیرا براه صد هزاران پرده آمد تا اله. هر یکی در پرده موصول خوست وهم او آن است کان خود عین هوست پس پیمبر دعف کرد این وهم از تا نباشد در غلط صوداپز و که اندر وهم او ترک ادب بی ادب را سرنگونی داد رب سرنگونی آن بود کو سوی زیر میرود پندارد و کو هست چیر زان که حد ماست باشد این چونین کو نداند آسمان را از زمین در عجبهایش به فکر اندر روید از عظیمی و از مهابت گم شوید چون ز اش ریش و سبلت گم کند، حد خود داند زسانه تنزند، جز که لا نگوید اوز جان که از رو حد برون است آن بیان پرنامه های مصنوی معنوی مولوی را مینوکتاش و شهباز ایرج دهیه و اجرا کردند